نوار با همکاری نشر میلکان تقدیم می کند دختری در قطار دوشته ی پاولا هاوکیمز زیر درخت توس نقره رنگی به خاک سپرده شده. پایین خطاهن قدیمی. نشان گورش سنگ است. سنگ قبری که در واقع چیزی جز تخت سنگی قائم نیست. نمیخواستم حواسم را معطوف جایی کنم که در آن به خواب رفته است. اما بیادش قادر به ترک او نیستم. او اینجا در آرامش میخوابد. بدون مزاحمت کسی. بی مزاحمت هیچ صدایی جز آواز پرندگان و صدای ریز و سنگین قطارها اولی بدیم نیست دومی خوشخبری است سومی نوید یک دختر سومی نوید یک دختر من روی سومی میمانم دیگر نمیتوانم چیزی اضافه کنم. سرم از صداها سنگین است. دهانم تعم ترخ خون میدهد دهد. سفومی برای یک دختر. میتوانم توانم وراجی کلاخها را بشنوم با غارغاری خشن میخندند خندند. مسخره می کنند. از چیز شومی خبر میدهند چیزهای شوم. حالا می توانم آنها را ببینم. سیاهیشان روی خورشید را گرفته. هیچ پرنده دیگری نیست همه میآیند همه با من حرف میزنند. حالا ببین؟ حالا ببین مرا به چه روزی انداختی ریچل جمعه 5 جولای 2013 صبح یک کپل لباس یه طرف خطا هم بود یه لباس آبی روشن شاید یه پیراهنقاطی یه سری چیزای کثیف دیده میشد. شاید آاتشغالایی روی ساحل مثل تیکای چوب پم به گیر کرده بود. باید مهندسهایی که روی این بخش از خطا کار میکردن جا گذاشته باشنش. از اینا اینجا زیاد پیدا میشه. شایدم چیز دیگه ای باشه. مادرم برای همین بهم به میگفت گفت بیش فعال. بس که از اینجور فکرها فکر تامم هم همینطور. هم همین دیگه. بی خیال نگاه کردن به این آتاش میشم میشم. یه تیشرت کثیف و یه جف کفش بی صاحب و همه چیزایی که فکرم و میکشونه سمت یه جف کفش دیگه و پایی که فیت اون کفش بود. صداهای های گوش خراش تلق تلق و خراشیدن آهن رو آهن ریل و قطار کپی کوچیک لباسا لباس ها رو از دید پنهان کرد و ما قل خوردیم سمت لندن. با حرکتی موزون و آهسته یکی پشت سرم نشسته و با ناامیدی آه میکشه. ساعت هشت و چهار دقیقه است سرعت کند قطار آشبوری به یوسون میتونه یه آزمایش باشه برای تحمل سفر با بلیط ارزون قیمت طول سفر پنجاه و چهار دقیقه پیش شده اما به ندرت درست از آب در میاد چون این بخش خطا آهن قدیمی و فرسوده است که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنه هنوزم کارای فنیش تموم نشده قطار سینه جلو جلو میره و عبورش آب فرسوده پلا و آلونکا و خونه های ویکتوریایی کوتاه و قدیمی رو به لرزه در میاره همه اینها مستقیم به خط آهن ختم میشن از پنجره سرک میکشم و به خونه های قدیمی که برام مثل نمای از یه فیلم میمونه نگاه میکنم من اونا رو می بینم ولی دیگران نه احتمالا هم اونا رو از این زاویه نمی بینن یه چیزی از این منظره منظره آدمای غریبه توی خونه هاشون تسلی بخشه تلفن یکی زنگ میخورره نوای زنگ ریتم شاد نامتعارفی داره که آخرش با قطعه تاکید کننده تموم میشه ای برای جواب دادن نداره صدا یریز دورم میچرخه میتونم آدمایی رو که تو این نوبت کاری قطار و صندلیاشون نشستن احساس کنم خشخش روزنامهها و تلیک کامپیوتراشونو قطار به یه طرف کج میشه و دور زاویه انحرافش تاب میخوره تاب میخوره و تاب میخوره و آهسته آهسته به نشان قرمز ایستگاه نزدیک میشه سعی می بالا رو نگاه نکنم سعی می کنم رو که ولش کرده بودم بخونم همونی که تو راه از ایسکا دستم گرفتم اما لغات جوره چشم تار میشن. هیچی جذبم نمیکنه. هنوز میتونم توی ذهنم کپه گوچیک لباسای ولو شده کنار خط آهن و ببینم عصر مخلوط جین و صده رو تا به دهنم نزدیک میکنم. فش. پش صدا میده. تند و تیز و خنک. تعم همیشگی اولین تعطیلاتم هم با تام توی دهکده ماهیگیری توی ساحل باسک سال 2005. صبحا تا جزیره کوچیکی تو خلیج کوچیک شنا کردیم بعدش گوشه کنارای اون سواحل اسرارآمیز خلوت بعد از بعدازرو توی بار میشستیم نوشیدنی های نیرومن می نوشیدیم، جین ترخا قوی و به آدمایی که تو گروه های بی بیست و پنج نفره روی جزر ساحل فوتبال بازی میکردن نگاه میکردیم یه جرعه دیگه می نوشم و یکی دیگه، اغلب میتونم نصفش رو خالی کنم و این خوبه تو کیسه پلاسیکی روی پام سه دیگه دارم امروز جمعه است، بنابراین من برای نوشیدن توی قطار احساس گناه نمی‌کنم. خدا رو شو که امروز جمعه است آخر هفته تفریح از اینجا شروع میشه قرار یه آخر هفته دلپذیر بشه <تصفيق> این چیزیه که اونا به ما میگن آفتاب تابان آسمون بیعبر قدیما گاهی با یه تور جنگل کلی رو میگشتیم یا تمام بعد رو دراز کشیده روی پتو توی هوای گرفته میگذروندیم و شراب مینوشیدیم گاهی با دوستاممون میرفتیم بیرون و کباب میخوردیم یا میرفتیم باغ گلاف و توی باخمیننشیم و آبجو می نوشیدیم با چهره های گلگون از آفتاب و الکل و بعد از ظرب بازم هم ادامه میدادیم توی خونه به هم میامیختیم بازو در بازو بعد روی مبل گرم و نرم خوابمون میبارد آفتاب تابان آسمون بی ابر هیچکس کاری کانه کاری برای انجام نیست زندگی اینجوری اینطوری من تو لحظه زندگی می کنم تا به سنا که روزا خیلی بلنده اوزا سختتر میشه چون تاریکی شب کوتاهه چون همه بیرونن و سرشون گرمه چون شادی به شکلی وقیحانه و سلطه همه جا هست فرسوده کننده و وقتی کسیو نداری که روزتو بای سر کنی احساس بدی به دست می ده. آخر هفته جلووی من کش میاد. چهل و هشت ساعت خالی برای پر کردن دوباره بغلی رو تا دهنم بالا میارم. اما یهقدر رام ندارم. دوشنبه هشت جولای ده صبح. بازگشت در ساعت هشت و چهار دقیقه تتسکییم بخشه. نه اینکه من برای شروع هفتم منتظره رسیدم به لندن نباشم موضوع اینه که من نمیخوام توی لندن باشم فقط میخوام به این پشتی نرم تکیه بدم توی این صندلی مخملی قوز کنم گرمای خورشیدو که از پنجره میاد احساس کنم تکونای عقب و جلو جلو عقب رفتن واگن و ریتم آسوده چرخار رو روی ریل احساس کنم من ترجیح میدم اینجا باشم به بیرون نگاه کنم به خونههای کنار ریل بیشتر از هر کجای دیگه یه علامت توی مسیر این خطه که میگه راه به نیمه رسیده به نظرم باید ای بی چیزی داشته باشه چون تقریبا همیشه قرمزه ما بیشتر روزا اینجا توقف میکنیم بعضی وقتا فقط برای چند ثانیه، بعضی وقتا هم چند دقیقه اگه من توی واگان دی بشینم که معمولا این کارو میکنم و قطارم با این علامت متوقف بشه که معمولا همینطوره دیده خوبی به خونه مورد علاقه دارم. خونه پلاک پونزده کنار خط آهن خونه پلاک پونزده خیلی شبیه خونه های دیگه این راسته خط آهنه. نیمه ویکتوریایی دو طبقه با چشم اندازی حقیر و باقی که خوب بهش رسیدن. چون تا حدود 20 پا دور تا دورش حسار کشیده شده. اون ورتر چند متر زمین بی صاحب جلوی ریل خط آهن ولو شده. این خونه رو؟ با قلبم میشناسم هر خشتش رو میشناسم رنگ دیوار پلاهی اتاق خوابش رو با تهرنگ سرمه ای رنگ چارچوب پنجره همومشو شو حتی میدونم چهار تا از کاشیه سمت راست سخفش افتاده. میدونم که اصرای گرم تابستون ساکنای این خونه جیسون و جس بعضی وقت از ارسی بزرگ پنجله بالا میان تا بشنن رو تراس موقتی پشتبوم ای که بعدش به ساختمون زمیمه شده اونا فوقالعادهان یه زوج طلایی مرد مشکی و خوشبونی است قوی حامی مهربون یه لبخند بزرگ هم داره زنه یه زن ریزه لاغر. لاغره یه جورایی زیباست، پوست رنگ پریده با موهای تلایه کوتاه، فرم صورتش خوش ترکیبه. های استخونی تیزی داره که با یه سری ککمک لک شده. چونشم هم خوشگله. همینطور که پشت علامت قرمزگیر گیر کردیم به اونا نگاه میکنم. جس اغلب صوبای اینجاست، مخصوصا بسونا، در حال نوشیدن قهوه. گای وقتی اینجا میبینمش، احساس میکنم انگار اونم هم منو میبینه. اینگاری درست داره به من نگاه میکنه. من هم میخوام برش دست کن بدم. از این بابت مطمئنم. جیسون رو زیاد نمیبینم. اون به خاطر کارش خیلی سفر میکنه. اما حتی اگه اینجا نباشن من به اینکه که اونا الان دارن چی کار میکنن فکر میکنم. شاید هر دوشون امروز صبح و به خودشون استراحت دادن. زنه رو تخت دراز کشیده و مرد صبحونه رو آمده میکنه یا شاید دو رفتن دوت دویدن یکی از کارهاییه که اونا انجام میدن. من و تام روزای یک با همدیگه میدویدیم. اینجور دویدن برای من یکم بلندتر از قدمهای عادی موقع را رفتن بود. برای اون تقریبا نیم قدم خودش بود. درست اینجوری بود که ما میتونستیم کنار همدیگه بدویم شاید جز سبقه دوم باشه تو اتاق مهمون یا شاید مشغله کار دیگه است یکم برمیگردم بر می گردم سمت پنجره تا پشتم که از ازکه دادن مدام به پشتی سندلی خسته شده استراحت کنه یکی از بطری های بلانو که از یوسون خریدم باز میکنم سرد نیست اما قابل خوردنه یکمشو تو رو توی لیوان پلاستیکی می ریزم درشو میبندم و سرش میدم تو کیف دستیم. نوشیدن توی قطار روز دوشنبه کمتر قابل پذیرشه مگه اینکه دست جمعی بنوشی که البته من اینجوری نیستم مشابهی تو این قطاران. مردمی که من هر هفته میبینمشون آدم آدمایی که میانو میرن من اونا رو یادم میاد احتمالا اونا منو یعنی اونا منو میبینن چیزی رو که واقعا هستم عصر خیلی خوبیه گرم اما نخفه خوشید ذره ذره داره غروب میکنه سایه ها قد کشیدن و عشقه خورشید رو درختا برق طلا انداخته قطار خیلی تند پیش میره. ما تند و سری جس و جیسون رو پشت سر میزنیم. اونا توی تیرگی نور غروب محو میشن. گاهی نه همیشه. میتونم اونا رو از این طرف خط قطار ببینم. اگه قطاری تو جهت مخالف حرکت نکنه و اگه ما به اندازه کافی آهسته حرکت کنیم وقتی روی تراسن میتونم در یک آن نگاهشونو از رو هوا بگیرم. اگه نه مثل امروز میتونم تجسمشون کنم. جس باهاشو رو روی میز تراس گذاشته. یه لیوان شراب دستشه. جیسون پشت سرش وایساده. دستاش روی های اونه. حس دستاشو میتونم تجسم کنم. وزنشو. رو. اطمینان بخشی و حامی بودنشو. گاهی به خودم میام که دارم سعی میکنم. آخرین باری رو که با کسی تماس فیزیکی معناداری داشتم به خاطر بیارم. فقط یه دراغوش کشیدن محکم یا یه فشار سمیمانه ای دستو قلبم فشرده میشه. سشنبه ده جولای دو صبح کپهی لباسهای آخر هفته هنوز اونجاست. به نظر میرسه گرد و خاکی تر و بیکستر از چند روز قبلن. جایی خوندم که وقتی با یه قطار تصادف کنی لباسا تیکه تیکه میشن. این یه چیز غیر معمولی نیست. مرگ با قطاره اینجور که میگن در سال 2300 سی تصادف داریم بنابراین لاغر هر دو روز یه نفر با قطار کش میشه مطمئن نیستم چند تا ای اینا تصادفه به دقت نگاه میکنم همینجور که قطار به آهستگی عبور میکنه دنبال رد خون رو لباس میگردم اما نمیتونم چیزی ببینم طبق معمول قطار رون رو علامه توقف کرد میتونم جس ببینم که توی حیات جلوی دره فرانسوی وایساده یه پیرنه روشن نقش دار تنشه. پاش لخته. از بالای شوناهاش نگاه میکنه و برمیگرده توی خونه. احتمالاً جیسون داره بهش میگه سابونه رو آماده کرده. و من همونطور که قطار ذره ذره جلو میره زل میزنم به جس. به خونهش. نمیخوام خونه دیگه ای رو ببینم. مخصوصا خونه ای چهار در پا خونه ای که معمرم بود. من پنج سال توی خونه پلاک بیست و خیابون بیل نیم زندگی می کردم. خوشبختی سعادت من دانه و بدبختی مطلق. حالا نمی توانم به اون نگاه کنم. اولین خونم بود. نه خونه والدینم نه یه بخش از آپارتمان با دانش دیگه. اولین خونم. تحمل ندارم بهش نگاه کنم. خب میتونم این کارو میکنم. من میخوام این کارو بکنم. نه. نه نمیخوام بکنم. سعی میکنم نتونم. هر روز به خودم میگم نگاه نکنم و هر روز نگاه میکنم. نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم. با وجود اینکه چیزی که میخوام ببینم اونجا نیست، با وجود اینکه هر چیزی که میبینم هم میکنه. با وجود اینکه به وضوح یادم میاد چه حسی داشت وقتی بالا رو نگاه کردم و متوجه شدم پرده کرباسی کرم رنگ اتاق خواب طبقه بالا غیب شده و جاش و پرده صورتی رنگ و لطیف بچه ای گرفته با وجود اینکه هنوز دردی رو که با دیدن آنا و اون تیشرت تنگی که روی شکم برامدش کش اومده بود و داشت بوتای روز نزدیک حسار آب میداد یادمه با دیدن این صحنه. اونقدر محکم لبم و گاز گرفتم که خونی شد محکم چشام و بستم و تا ده تا پونزده تا بیست شمردم اونجا حالا دیگه غیب شده بود هیچی برای دیدن نبود ما قلتیدیم به ایستگاه و از اونجام رد شدیم قطار دوباره سرعت گرفت و همونجور که هومه توی شمال کثیف لندن فرو میرفت جای پلای باریک و ساختمونای خاریه پنجره شکسته با خونههای تراسدار عوض شد به یوسون که مشتاقش بودم نزدیک شدیم های فشرده امروز چجوریه یه جور کثیف سمت راست خطاهن حدود صد متر قبل از ورود به یوسون ردیف کوچیک زنجیر واری از های به هم فشرده وجود داره کنارش کسی با رنگ نوشته زندگی یک پاراگراف نیست هم. به تودهی لباسه کنار خطاهن فکر میکنم و احساس میکنم انگار گلوم گرفته زندگی یک پاراگراف نیست مرگم جمله محترزه نیست قروب قطار ساعت هیوده و شیش دقیقه منو به شب رسوند کمی کنتر از صبح حرکت میکنه یک ساعت و یک دقیقه طول کشید، دقیقاً هفت دقیقه دیرتر از قطار صبح، با وجود اینکه توی هیچ ایستگاه اضافهی ای توقف نکرده، برای من دیر نیست، چون درست همونطور که هیچ شتاب ای ندارم که صبح بلندن برسم، هیچ عجلیم برای اینکه که برگردم آشبوری ندارم، نه فقط چون اونجا آشبوریه، هر چند جاییه که خودش به اندازه کافی بد هست، یه شهر جدید دهه شستی که مثل یه تومور رو قلب بوکینگ هام شایی کرده. نه بهتر و نه بدتر از یه شهرهای دیگه ای مثل خودش. مرکزش پر شده از فروشگاه تلفن موبایل و کافی شاپ و دفاتر ورزشی که در احاطه مشتمه سینمایی و شهرک تسک و به هومه شهر وصل میشه. من توی یک از شیکترین در واقع جدیدترین بلوک ها زندگی میکنم. جایی قلب تجاری شهر از اونجا شروع میشه و خون و به هومه میرسونه اما اون خونه من نیست. خونه من یه خونه قدیمی دو طبقه است کنار خطاهن. اونه که خونه منه. توی آشپوری من نسایب خونم مستاجر مسافر مهمون خونم. ساکنه تخت کوچیک طبقه دوم تو دوبلکس بی سر و صدا و آروم کتی. چیزی که مثل خود کتی افسونگره. من و کتی دوستای دانشگاهی بودیم البته نه دوست صمیمی هیچ وقت اونقدر با هم نزدیک نشدیم سال اول اون توی همون خوابگاهی بود که منم بودم هم دوره بودیم برای همین تو اولین هفته های را آور قبل از اینکه آدمای دیگه رو که با ما مشترکات بیشتری داشتن ببینیم متحدان طبیعی محسوب می شدیم. بعد از سال اول و توی تمام سالهای بعد از کالج زیاد هم رو ندیدیم جز بعضی مواقع اونم توی مراسمی چیزی اما درست وقتی بهش نیاز داشتم دیدمش و فهمیدم که یه اتاق اضافی داره و اون حس ایجاد شد دو دقیقه هم تو نکشید شایدن بیشتر مثلا شیش دقیقه راه دیگه ای نداشتم هیچ وقت تنها زندگی نکرده بودم از پیش والدینم رفته بودم پیش هم, هم و از اونجا به زندگی با تام دست باچه شدم؟ بنابراین گفتم بله دو سالی از اون موقع میگذره ترسناک نیست کتی آدم خوبیه یه جور خوبی قابل باور اون وادارت میکنه به خوبیش توجه کنی خوبیش یه نوشته بزرگه کیفیتش مشخصه و خودش اغلب به این آگاهی نیاز داره اما هر روز هفته سر کار داشتن با این ویژگی م... کسل کنند است با این حال خیلی بد نیست من میتونم به ویژگی بدتر یه هم فکر کنم نه این به خاطر کتی نیست حتی به خاطر آشپوری هم نیست که هر دوتاش برام مثل یه موقعیت جدیده من هنوز طوری فکر میکنم که انگار جدیده با اینکه که دو سال گذشته این به خاطر دست دادن کنترله توی آپارتمان کتی من همیشه حسه یه مهمون ناخون دارم. فکر میکنم این حس به خاطر آشپز است جایی که وقتی ما اون تو مشغول پخت و پز شاممونیم برای جااز کردنم که شده به هم تنه میزنیم. تنه شاید به خاطر وقتی که من کنار اون روی مبل میشیم و اون محکم مت کنترل رو نگه داشته. مم. تنها فضایی که احساس میکنم انگار مال منه اتاق خواب کوچیک که, که توش یه تخت دو نفره و یه نیم کچ شده با یه ذره فضای خالی بینشون برای راه رفتن. این به اندازه کافی راحته. اما جایی هم نیست که تو بخوای باشی. بنابراین من معمولا تو اتاق نشیمن یا پشت میز آشپزخونه میپلکم. خیلی غیردوستانه است و من از برطرف کردن این حس عاجزم. برای هر چیزی کنترلمو از دست میدم حتی کنترل از ذهنمو.